اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على نبینا و آله خدمت عزیزان دانشجوی خودم ارز سلام داریم و صبح خیر عرض می کنیم انشاءالله که در صحت و سلامت کامل باشید و از هر گونه آفت و بلایی به و امشب شب ولادت نبی گرامی اسلام و امام جعفر صادق هست شب بسیار است شب رحمت است خدمت شما تبریک میگیم انشاءالله که ما را هم از دعای خیر فراموش نکن اما مبحث ما ما دو بحر رو تا حال با شما در خدمتون بودیم یکی بحر طویل که کلیدش این بود طویل لهو بین البهوره فضائلو فاولون مفایلون فاولون مفایلو هم. مواحصش رو انجام دادیم که طویل فعولون مفایلون فعولون مفایلون و هشت مرتبه تکرار میشه چهار مرتبه در مصره اول و چهار مرتبه در مصره دوم و کلیدش هم طویلون لهو بین البهور فضا ای ان لهو بین البهوره بوره رو فعولان مفایلون فولان مفاع بهر دوممی که در خدمت شما بودیم و با هم دیگه خواندیم بهر بسیط بود بهر بسیط و کلید اونیم بود این نل لديه يبسط الأعمال. إن البسيط لديه يبسط الأعمال. مصطفى آل فائل مصطفى آل فائل. إن البسيط لديه يبسط الأعمال. مصطفى فائل مصطفى فائل. این بحر هم از هیشت هشتا تفعیل تشکیل شده بود مثل قبلی. دو تفعیل متفاوت، اون فعولون مفایلون، این مستفعلن علون فایلون. چهار تا در مصرای اول، یعنی صدر بیت، چهار تا در مصرای دوم، شدر دوم، یعنی اجازه بیت. مصطف علون فایلون، مصطف مصطفی علم و مصطف علم بایل. بعد آمدیم در این بحر بسیط عواملی که ایجاد تغییر می کند رو با همدیگه دیگه خاندیم. یکیش زحاف خبن بود زحاف خبن که دومین حرف ساکن را حس می کرد و مصطفیلون رو به مفاعلون تبدیل میکرد، و فاعلون را به فاعلون این زحاف بود که به اونی هم که داخل میشد میگفتند مخبونه دوم زحاف تی بود که این بحث ماست زحاف تی اون حذف حرف چهارم ساکن از تفعیله بود خب حرف چهارم ساکن از تفعیله تو فائلون نداریم فائل و هنم متحرک پس این فقط مال مستفعلونه که مستفعلان اون فا هست میشه مصطفعلون درست شد حرف چهارم که فای هست میشه میشه مفتعلون مستف الان که اگه فراحز کنیم میشه مستا و ما مستا نداریم اما توی وزنهای فرعیمون تفعیلهای فرعیمون مفتر رو داریم مفتر این مطویه بهش میگه که زحاف تایی بهش را از علتها هم علت قطع بهش داخل میشه که حذف وتد مجموع بود که وتد مجموع رو ما حذف کنیم فاعلن میشد فعلن میشد شد مفاعولن درستو این چیزی بود که ما با هم خود. فقط یه نقطه‌ای که باقی موند این بود که ایشون مثال هایی که زد و نمونه هایی که آورد و توضیح داد هیچ کدوم زحاف تی ما توش ندیدیم گرچه زهافه، ولی خب باید یه نمونه مثال میزد که زحاف تی هم توش بود و ما می دیدیم که مستفعلون تبدیل شده به مفتع مثالی نزد یعنی از این جهد دارای نقص بود ما به شما گفتیم که توی این جلسه این رو کامل میکنیم و این مثال رو هم برای شما میادیم برای همین شما نگاه کنید توی تمارین همین درس، یعنی تمارین بهر بسیط توی تمارین بهر بسیط گروه یکش گروه یکش داشت چند تا بیت نقل کرده؟ یکیش نوشته قالش شاعر رو یا موز کین داره این گروه ها که نوشته کاش یک و دو که کرده یکو مثلا مینوشت علف بعد اون نمونه ها رو یک و دو مثلا قالل بوسیری فی مده نبی ینا میشد یک قال الحریری فی المقامته الکوفی مشد شد دو قال حسان و نصابتن الانصاری و سه قال شایرون شد چهار اینطور ردیفتر بود و انسان بهتر میتونست آدرس بده قال شاعر نیدید حتم این بیت رو با هم تقدیم کنیم و اون زحاف تای. که باشد رو توش رو تشخیم میگه یا مز کین ناره. اولا باید چی رو خوب بخونیم که بتونیم ترک کنیم. یا مز کین ناره. فی فعادی، فی فعادی. انت دعای و انت داوی، انت دوایی و انت دائی ازکایوزی کا ازکاان یعنی اشعله یعنی اوقده یعنی روشن کرد یا موز که یا ناره فیفادی یا یعنی ای مزکیه منادای مصاف منصوب شده یعنی ای برفروزاننده انار یعنی این آتش منظور آتشش عشق ای برفروزاننده این آتش فی و در دل من ای کسی که این آتش رو در دل من شعلور ساختی ای کسی که ای آتش رو در دل من انداختی انت دوایی و انت دایی تو خودت داروی درد منی دوای منی و تو خودت درد منی و مرض منی یعنی تو هم مرضی و هم مرزی که آتش رو روشن کردی، فراغ و ایجاد کردی، من رو به خودت وابسته کردی دوایی که اگر با من روی خوش نشوند انت دوایی و انت دار بین دوایی و دایی جناس ناقس هست یا مزکهین نارهفی فعادی انت دوایی و انت دایی شعر رو معنا کردم راحت خوندم که شما بتونید تقطیل کنید حالا یا داریم اون مرحله دوم که به شکل املاع عروضی نوشتن را انجام میدید یا موز که ین نا و فی فو آدی آ فت تیره نوشتن میشوند دوتاست دو, دو حرف یعنی یه سبب خفیفه یا مز که ین نا ره فی فو آدی خب اون طرح ان ت د وا ای و ان ت دا ی خوب حالا به شکل املاع عروضی نوشتیم حالا میایم این رو به شکل علامات می نویسیم یا خط تیره موز خط تیره چه یو ین خط تیره نا خط تیره ره یو پی خط تیره فو یو آ خط تیره دی خط تیره ان خط تیره تا یو ده خط تیره چیو ان تیره تکرار ان خط تیره تا یو ده یو وا خط تیره ای خط تیره و یو آن فت تیره ت یو دا یو ای چیه؟ دا فت تیره ای فت تیره حالا که اینا رو به این شکل در بردیم تختیم کنیم یا موز که ین تا اینجا قت چی میشه؟ مصطفل یا موز که یند یان تا اینجا مصطفل فی فو آ قطع میکنیم فی فو آ میشه چی؟ فا که numbers fee for off your most J y no lay fee for fo, all Ts فعادی این هم میشه چی؟ فعلن پس چی وزنش در اومد؟ مصطف علون همینطور که من دارم می شما می نویسید مصطف علون فعیلون فعیلون مصطف علون فعیلون فعیلون. فعیلون. یا موز که ین مستقل نارفی فائلون فعادی فائلون این داره شد مستقل فائلون فائلون فائلون ان ت ان ت در وا ان می دا وا در شاهد میثال مفتعلن دا یو یو ی و ان،ی و ان فاعل،ی و ان فاعل، تداوی فاعل، تداوی فاعل تداوی تدائی لون. خب حالا اگر نگاه کنید ببینید که ما مفتعلون رو توش دروردیم و این زحاف زحاف تایی بود و مطبیه بود حالا وزنی که ما در بردیم این بود مصطفعلون <مستفعلان> فا فائلون فائلون مصطفعلون فائلون فائلون دارست مصطفعلون فائلون فائلون مصطفعلون <كشد مفتعلان> فا که فا شد ستایی بود مصطفی ادن فاعل فعل فعلانش مخدونه بود فاعلش مخبونه است و جزء بقول خودمون مجزوع یعنی یه جزءش حذف شده یه جزء از اون بگید حذف شده و ضرب و عروزش هم مخبون است یعنی مجزوع مخبونه مجزوع بگید مخبونه مجزوع مخبون ما از مجزوعات سر نگاه کنید البسیط المجزون مخلع البسیط و احد و مجزوعات البسیط شاه یکی از مجزوعات بسیطه که شروع داره فقط خوزفت تفعیلت و فاعلون علا خیله من مصرعی بروش شد فعصفت تفعیلت و عروزهی و ضربهی مصطفعلون سم ملحفت ها علت و غد فعصفت مصطفعلون مفعولون سم مدخلها زهاف القبل فسارت فعولون بروش خب تمام بریم سر کار بحث خودمون این یکی دیگه از اون مباحثی بود که با هم دیدیم و یه مای مفرحelon به شما نشوند بحر وافر بحر امروز ماست بحر وافر بحث امروز ماست مم. بحر وافر دقت کنید بحر سوم رو که بحر وافره نسبتاً راحت تره یعنی بحری رو راحت میتونید بخونیمش و مشکلی هم توش نداریم بحر وافر کلیدش اینه مفتاح البهر بحور و شعر وافرها جمیل مفاعلت مفاعلتن فاعول مفاعلتن مفاعلتن فاعول بحور و شعر وافرها جمیل بحور و شعر مضاف مضافانه لعیه مبتدا وافروها مبتدای دوم جمیلان خبرش و این جمله وافروها جمیلان خبر بحور و شعر راحت بود نه؟ چی میشه؟ بهور و شهره بهرهای های شعر وافره وافر این بهرها وافر از میان این بهرها جمیل، زیباست بحور و شعر به آفه ها جمیلون مفاعلتون مفاعلتون فعولون, مفاعلتون. مفاعلتون فعولون. مفاعلتون داشتیم تو تفعیل های اصلی دوبار تکرار شده مفاعلتون مفاعلتون بدونم اونم فاولون که قبلا هم دیده بودیم توی بحر طبیل دیدیم دیگه فاولون مفاعلون فاولون این یه فرقی با اون دوتای قبلی داره اونا شیشتایی بودن چه هشتایی بودن تا تو مصره اول میکردیم می‌کردیم چارتون استایدو. اینجا شیشتایی سه تا سه تا این بهری یه مقدار سبکتره، چابکتره، تیزتر، تندتر دراومده. او هوش شعر روها جمیلو. مفاعلاتن مفاعلاتن فاعول. پس اینم کلید بحر سوم که انشالله حفظ بحور و شعر وافرها جمیل و مفاعلتون مفاعلتون و تام و من منحاز البر اگر تام داشته باشیم از این بحر یه و من ست تفعیلات از شش تفعیل تشکیل شد اله شکل تاری به شکلی که ببینید مفاعلتون مفاعلتون فعول و فعول, و مفاعلتون مفاعلتون فعول. خب گفتیم با اون دوتا بهر قبلی یه فرقش اینه که این شش تفعیله ایست اونا هشت تفعیله ای بودن درسته و این زربا هنگش از اونها تونتر از دوتا تفعیله مثل اونها تشکیل شده اونها فعولن و, مفایل و اون. یه بحر طویل تشکیل شده بود مصطف علون فایلون تو بحر بسید تشکیل شده بود اینجا مفاعلتون فاولون و مفاعلتون دوبار تکرار میشه فاولون ضرب و عروضشه ضرب و عروضش فاولون مفاعلتون مفاعلتون فاولون مفاعلتون نه تکرار میکنم که تو ذهنتون کامل بشید تغییراتی که آرز میشه بر این بحر. تغییراتی که آرز میشه بر این بحر یکی زهاف و عصبه مقام زهاف و دیگه اصلا علت داخل نمیشه. دوتا زهاف بهش داخل میشه دوتا بگید زهاف داخل میشه خب دوتا زهاف علتم نداره چون دوتا زهاف داخل میشه زهاف هم که گفتیم که قابل ادامه نیست پس بنابراین چیزی به حساب نمیاد وا نمیتونه بشه بیشتر نیست صحیحه سالمه چون چیزی که قابل ادامه شه. اگر قابل ادامه که اونام هم نیستن زهاف فول بخونیم وحوه و با. اون اینه وحوه اسکانو لحرفه الخامس من تفعیلت مفاعلتون ساکن کردن حرف پنجم از تفعیله مفاعلتون ببین مفا این ستا اله اون لام ساکن شه دیگه توی اون فعولان هم نمیاد چون فعولان اصلا پنجامیش خودش ساکنه میشه مفاالتون، و ما مفاعلتون نداشتیم مفاالتون میشه مفاعلون وزنه است پس مفاعلتونش تبدیل میشه به مفاعلون این عصب. قصب العصب و هو اسکان الحرف الخامس من تفعیلت مفاعلتان فیغای و یغیرها ایلا مفایلان زهاف عصب و اون ساکن کردن حرف پنجم از تفعیل است که مفاعلتن میشه مفاعلتان و ما مفاعلتان نداریم و یغیرها ایلا مفایلان درست و حاضر زهاف یدخل خلو مفاعلتون به کسرتن و این زهاف داخل میشه به مفاعلتون خیلی زیاد یعنی خیلی زیاد میشه که ما میبینیم مفاعلتان مفاعلتان شده مفایلان یعنی حتی شده که تا مفاعلتون داره مفاعلتان مفاعلتان فعولان مفاعلتان مفاعلتان فعولان چهارتاش هم شده مفاعلان یعنی همه شده معصوبه شود مفاایی دون مفاایی دون فاول این در واقع بهره بافیره. مفاعلتون خیلی زیاد تبدیل میشه به مفاعیلن معصوبه مأثوب میشه زهاف و اسب بیشترش. با هزار زهاف یاد خود مفاعلتون به کسرتن این به کسرتن یعنی معکسرتن یعنی کسین خیلی زیاد. خال. علو مفاعلاتون یاد خلو مفاع ف هاذا زهاف یاد خلو مفاعلاتون این داخل میشه بر مفاعلاتون بیکسرتیم یعنی مهکسرتیم این بیکسرتیم مهکسرتیم ازش میشه کسیلان حال میشه از برای فایده گرفته داخل میشه بر مفاعلاتون در حالی که خیلی زیاد ف قلمان را قلمای نیرویتان این فرق یعنی بنابرای فقالما نرابیتن خیلی کم میشه ما ببینیم یه بیتی از یه قصیده المنظومت علا حاضر بحر یه قصیدهی که تو این بهر سروده شده ولم ید خلقه ها کم میشه ببینیم بیتی هست توی یک منظومهی که تو بهر وافر سروده شده ولم ید خلقه ها و این زهاف بهش داخل نشده شد. یعنی خیلی نادر میشه که ما ببینیم مفاعلتون مفاعلتون فولون مفاعلتون مفاعلتون فولون آمده یعنی چهار مفاعلتون فولون سالمه این زهاف بهش داخل نشده خیلی میگه کم میشه مانگون شده که به همش داخل شده شده که به تا سه تاش داخل شده دو تاش داخل شده یکیش داخل شد اما اینجا اصلا این زهاف در بحر وافر نیامده باشد توی بیتی از عبیات یک قصیده میگه خیلی نادر دیده شده یعنی بیتی که سالم باشه از این زحاف اسب خیلی کمه و قلمان را بیتن منال قصیده تا البن سومت علا حاضر و لم ید از زهار و ندرتا میبینیم بیتی از قصیدهای که نظم شده سروده شده بر این بحر در حالی که داخل نشده باشه بهش این هاف کم میشه ببینیم بیتی با که سروده شده است در این بهر وافر و این زهاف بهش داخل نشده بلکه بل قد یدخلو احیانا جمیع تفعیلات مفاعلتن که گاهی اوقات قد بر سفر فعل گاهی اوقات داخل میشه آه به همه تفعیل های مفاعلتن فیل بیت به همهشون داخل میشه چهار تاش من هر سه تا فرق جعلها همه رو میکنه معصوبه یعنی به جای مفاعلتن مفاعلتن فاعولن مفاعلتن مفاعلتن فاعولن ما داریم چی بگید مفاییل مفاییلن فاعولن مفاییلن مفاییلن فاعولن و یجعلها معصوبه کماسنه رو انشاء الله تعالی همونطور که ما اینجایی رو خواهیم اینجایی رو از زهاف حسب میاد پنجمین حرف ما رو ساکن میکنه مفاعلتون رو میکنه مفاعلتون مفاعلتون نداریم بیشه وفایلون و این در بحر وافر خیلی داخل میشه و کمتر میشه بیتی رو پیدا کنید که داخل نشده باشه بلکه بیت های زیادی رو میتونید پیدا کنید که همه مفاعلتون هاش معصوبه هست و مفایلون شده اولی ساده و زیاد خب اولی ساله بوزی ها سخت دوم زهافل کفتی زهافل کفت خب به اونی که زهاف عصب داخل می شد چی بهش می معصوبه نگفت ما رو عرض کردیم؟ به اینی که زهاف کف داخل میگن می گن مکفوفه. و هوقه حضف و حرف عصابه از, از ساکن مند تفعیله حضف حرف هفتومه ساکن از تفعیله حذف حرف هفتم از که ساکن هسته مال نمیشه چون فعولان 5 هرف بیشتر ندید مفا اله هنشتا تن هفته پس مال مفاعلت ها دیم اگه حرف هفتم ساکن به حذف کنیم نون هست میشه میشه مفاعلت ها و قدیل حقو به و داخل میشه به قلتل یعنی قلیلت تفعیلت مفاعلتن المعصوبه داخل میشه به مفاعلتونی که معصوبه است زهاف عصب چی بود؟ میامد مفاعلتن رو میکن مفایی می می کنید چی؟ بگید مفایی لن مفایی حالا گوش کنید زحاف تای داخل میشه. به مفاعلتونی که خودش شده معصوبه یعنی اول مفاعلتون معصوبه میشه میشه چی؟ مفایی بعد بعد پرفتومین حرفش نون هست میشه میشه مفایلو لو درست شو؟ پس اول هم زحافتی چی هست؟ خب خب حرف هفتم ساکن خب باش حصف حرف هفتم ساکن یعنی نون کجا داخل میشه؟ میگیم جایی که مفاعلتون معصوبه شده باشه یعنی مفاعلتون بشه مفایلون بعد مفایلون نونش بیفته بشه مفایلون آه که در واقع میشه معصوبه مکفوفه درست شد معصوبه مکفوفه خب زهاف و کنج و خب هزف و حرف از, از ساکن من تفعیلته درست شو. و قد یال حقوقت بسر فرموزاره یعنی گا. و گاهی داخل میشه اونم خیلی کم کم به تفعیله مفاعلتونی که معسوب است یعنی مفایلن فتام به بنه در تامش داخل میشه اونم نه در مجسود فیغیروا حالا مفایل و به شد معسوبه شد مفایلن مفایلان نونش افتاد شد مفایلو این تو تام میگه دیده میشه الان به این باید چی بگیم به مفایلو بگیم معصوبه مکفوفه ولیکن حاضر زهاف یل حق و به المعصوبه بکسرتن فیلی من منحازه در تامش خیلی خیلی کمه یعنی اگه صد تا بیت باشه ممکنه یه دونه پیدا کنیم ولی در مجزوعش زیاده در مجزوعش شما این معصوبه مکفوفه رو زیاد میبینید یلحقو ولیکن حاضر زحافو یلحقو مفاعلتون المعصوبه به فل فیل من منازل دار تمام کف و اگر بهمون بگن چیه میگیم چیه میگیم اولا زحافه کف تابع به زحافه اسم. عصب داخل میشه یعنی اول باید بشه مفاعلتون مفایلون معصوبه بعد زحاف کف داخل شه مفایلون بشه مفایلون اینه این عملیات در تام خیلی خیلی نادره ولی در مجزوع زیاده در تام خیلی خیلی نادره ولی در مجزوع بگید زیاده در مجزوع ما این رو میبینیم شد؟ خب انواع بهر وافر انواع بحر وافر انواع بهر وافر یعتی بهر الوافر علا نوعین بهر وافر دو نوعی احدهما تام و یکیش تام یعنی هر شش تا تفعیله رو داره مفاعلاتن مفاعلاتن فاعلن مفاعلاتن مفاعلاتن فاعلن هر شش تا دو تا یکی شتمی یعنی بحر الوافر علو نوعین احدهما تام و یکیش تام و هو شاع ان الشعر العربی تو بحر وافر شعر گفتن یعنی شما اشعار عربی رو برید نگاه کنید بحر وافر از بحرهای دوست داشتنی این شعراست چون زربا هنگش نسبتاً تندتر از اونهاست متوسط نه خیلی کوتاه نه خیلی بلند خیلی مرتب هستش از لحاظ موسیقی بهتر اقبال به این بحر زیاد تل شعر گفتن یعنی بحر وافر الان نوعی احد اما تامون و هو شاعون به شعر العربی وله آخر و مجزوع یکی شن مجزوعشون که مفاعلتون مفاعلتون مفاعلتون مفاعلتون اون فولون فولون از آخرش توی عروض ضرب افتاده یعنی همین ضربه هنگ تنده این که ستا ستا بود تند تر شده شده دوتا دوتا مفاعلتون مفاعلتون مفاعلتون مفاعلتون, مفاعلتون. انواع بهر وافر یعنی بهر الوافر اهد و احدهما تام یکیش تامه و هوا شال اون به شعر عربی ول آخر و مجزو اون مجزو قلیل استعمال, استعمال استعمالش کمه اما یه یادتون باشه استعمالش کمه نه یعنی که تو شعر عربی کمه نه تو شعر عربی زیاد نسبتا همین مجزوع بهر وافر نسبت به تامش کمه گرفتید نه نسبت به تامش کمه این منظورشه که کمه پس گوش کردید این بهر وافر دو میاد یکیش تامه یعنی مفاعلتون مفاعلتون فعولون مفاعلتون مفاعلتون فعولون این خیلی استعمال داره در شعر عربی یعنی اگر صد تا قصیده وافر گفته باشن نوت تاش تامه و مجزوام هم داره اما مجزوش کمه کمه یعنی چی؟ یعنی نسبت به اون تامش کمه یعنی اگه صد تا تو, تو بهره وافر گفتن نه تاش تامه ده تاش مجزومه. درست دو؟ پس خودش ده درصد هست یعنی در حد صفر نیستش که خیلی کم باشه یه درصد دو درصد به مرزشیاد گرفتن نداره نه هست اما نسبت به تامش کمه آخر و آخر رو مزونقدیل استعمال چون ما یادتون باشه بودیم اونایی که قلیل و لسته ماله هست نمیخونیم افس نمی کنیم به چه درد من یه چیزی افس کنیم که مثلا اگه صد تا قصیده دیدیم احتمال داری یکیش مثلا هم باشه نه این نسبت به تام مشکنه پس بنابراین برای همین ذکرش میکنیم و یادشن انواع و بحر الوافره یه تی یعنی بحر الوافره علا نوئین احد هم و تامون و هو شعر العربی ولی آخر و مجزو آن قلیل و استعمال و الیکه شرح هازین نوعی این اسم فعله یعنی خوز بگیر دریافت کن شرح دریافت کن بیان این دو نوع رو این دو نوع رو برات بیان کنیم این بهر وافر هم تمام میشه الهی که شرح خوازین نوین یک الوافر و تام وافر تام که بردیم این قسم بیشتر از مجزوشه الوافر و تام و هوه ماکانت عروزه و فعولون عروزش فعولونه مفاعلتون مفاعلتون فعولون باشه و ضربهو مثله ها ضربش هم فعولون مفاعلتون مفاعلتون فعولون مفاعلتون مفاعلتون فعولون بعد مطلبی که داره اینه ممکنه زحاف اصحب یعنی معصور شدن به این مفاعلتون ها داخل شده باشه زیاد ممکن ممکنه هر چهارتاش هم کرده باشه مفایل که هیچ تحصیلی هم نداره میشه تو هش بشه این زحاف در هشفش واقع میشه در هشف که واقع بشه قابل ادامه نیست پس بنابراین هیچ در اصل صحیح بودن لذا ببینید چه نگفته که وافر تام صحیح شما غیر صحیح ندارد چون فعولان همشه سالم اگر زحافی هم داخل بشه به مفاعلتون داخل میشه و مفاعلتون در هشفه قابل ادامه هم نیست پس بنابراین وافر همیشه تام است و همیشه وافر تام همیشه وافر الوافر تام با و, و هوا عروض و فولون و ضربه و مثلها نه و قول شاعر مثل قول این شاعر والا تجلس الى احل دنایا فا این نخلا خلائق از تودی و لا تجلس الى اهل دنایا فا خلائق از تودی جلسه الى یعنی جالسه جلس تو الى زیدن یعنی جالس تو هم نشینی باهاش کردم کنار زید نشستن یعنی هم نشینی کردم. و جلسه اله یعنی جالس جلس تو اله زیدن معادل با جالست توه یعنی با آش هم نشینی کرد این لغت رو یاد دنایا جمع دنیه است دنیه از دناعت دنیه بوده شده دنیه یعنی پستی پلشتی دانشون خلائق جمع خلیق است خلائق جمع خلیق است یعنی خلق و یعنی طبیعت سرشت صفها هم که جمع صفیه یعنی جاهلان نادانان توعدی از اعدا یعدی یعنی اصرا یعنی سرایت کرد یعنی اصرا یسری شو. ما میگیم این مرز مصریه یعنی سرایت میکنه مثل همین مرز کورونا عربی میگن معدن مرزن معدل یعنی اپیدمی میشه علا امراض و تعدی یعنی سرایت میکنه مشخص اعدا یعدی اعداعت یعنی راس یسری یعنی سرایت کرد خب حالا لغت رو دونستیم این شعر رو شما توی بلاغت خوندید بیات باشه تو بلاغت تو علم معانی توی قسمت انشاء توی قسمت نحیه تو معانی مجازی نهی که یکی از معانی مجازی نحی ارشاد بود نصیحت بود نحی برای ارشاد و نصیحت بود معانی زیادی داشت نهی معانی مجازیش یکیش نصیحت و ارشاد بود بله ارشاد و برنس. این ولا تجلس داره نهی میکنه داره ارشاد میکنه مسیحت میکنه که شما با آدم های پست هم نشینی نکن آدم هایی که خلق خوی بست دارد با آشون آمد و هم نشینی نکن ولا تجلس الى اهل دنایا مجالست نکن با صاحبان و اهل پستیها ها یعنی نهایی که خلق خوی بست دارد باهاشون آشون رفت آمد نداشته باش این فهمش میگن فای تعدیل نتیجه سببیت یعنی زیرا چرا؟, چرا با آدم هایی که آلودن رفت آمد نکنیم؟ میگه زیرا این نخلاق غصفه های زیرا خلق و خوهای انسان های صفی خلق و خوی آدم های نادان تعدی سرایت می‌کند. سرایت یعنی اگر او بیماری روحی داره به تو هم منتقل میشه اون اهل قیبت خصیص بخیل هم نشینی با او تأثیر گذار در توست. قیقنبر خدا میگه مجالست تو محسرتون هم نشینی تأثیر گذار بیشه رو فهمیدیم و این نفرای از صفه‌های تو تختیش کنیم. یعنی اول به شکل املا عروضی بنویسیم ولا و لا تجلس ا لا اه یا فر ان خلا قصفه ها اطعا دی اطعا دی دیدید دیگه قصفه ها اطعا دی حالا بیایم این رو تختی کردیم علامت گذاری کنیم مشخصه علامت ها رو دارید میبینیم و لا تجلس یو خط تیره خط تیره خط تیره ایلا احلت یو خط تیره خط تیره خط تیره دنایا یو خط تیره خط تیره اینجوری میبینید خب این تقدی که کردیم حالا نگاه کنید در اومد مفائل مفائل فاعول مفائل چیه مفائلان موالهتون بوده معسوب است که گفتم خیلی زیاد تو تامش دیده میشه دیگه, دیگه بعد ما چی فعل لفعلا ای مفاعلتن ایغاز سوفها مفاعلتن اتودی صعود یعنی اینجا شما دو تا از چهارتا مفاعلتنتون شده مفایلون معصوبه و ما گفتیم کم میشه بیتی رو پیدا کنیم که این زهاف و عصب بهش داخل نشده باشه. خب درست شد نه؟ میگه فی هاز بی ها زنده دخل زهاف العصب علی التفعیلة الاولى و ثانیه من شطر در این بیت داخل شده زهاف عصب بر تفعیله اول و دوم از شطر اول یعنی صدر بیت و اما توی عجز بیت توی تفیل اول و دومش دی داخل نشده اون همون مقاهلتو و گفتیم این خیلی زیاده. حالا خودش میگه. بقید یلحق و زحاف و اصولا جمعی تفعیلات مفایلات. حتی بای اوقات شده که توی مصرای دوم تو عجوز هم داخل شده هر چهار تا مفایلتون شده مفایلن گفتم من اینو. خیلی هم زیاد. این خیلی زیاد داخل. به یکیش داخل شده. دوتاش داخل شده. به سینجا. سه تا چهار تا. حتی تاش داخل شده حتی نمی کاری یعنی گاهی داخل میشه زهاف فعص بر تمامی تفعیل های در این بیت و یهیرو ها منصوبتン یهیرو یعنی یه یعنی گاهی داخل میشه زها, بر تمامی, بید. یعنی یعنی داخل میشه زها بر تمامی تفعیلات مفعالتون در این بیت پس تغییر میده اونها رو این تفعیل ها و ما میکنه آنهاشون. نه و از آلم تستاتی شیان فداقو و جاوزه او ایلاما تستاتی و جاوزه او ایلاما خوب. این بیت رو هم باز توی بلاغت ما با هم ازا لم تستطع شیعن و دعه جاوز و جاوزه الاما او توی لم تستطع و تستطعو با هم تباق داره. یکیش فعل مثبت، یکیش فعل منفیه بهش میگن تباق سرب دوست شد بعد این سنت بدیعی تباق توشهست سنت تضاد توشه از نوع سنت تباق سرب دوم تستتی او که آخر بیت اومده اگه یادتون باشه گفتیم اگه اول مصرهای اول وسطش آخر مصرهای اول اول مصرهای دو تکرار بشه بهش میگن رد دل اجوزه الاسد این الان وسط مصرهای اول تکرار شده تستتی بعد همون دعه و جاوزه و در واقع فعل هم اینجا باز برای نصیحت و ارشاد داره ارشاد میکنه و این بیت معنای مجازی امره ارشاد این بیت در واقع اومده شعر کرده بهش میگن عقده تو اصطلاح بناقی یعنی به نظم درآورده. حدیثی از امیر المومنین رو علیه و آلافتییت و سلام که میگه اگر دیدی تو کاری موفق نیستی اون کارو بذار کنار ادامه ندهی که تا معیوس بشی افزار بشی افزار بیم بری برود دنبال یه کار دیگری که علاقت درش هست و میتوانی اینم هم همین میگه میگه ازا لم شیعن اگر قادر نیستی کاری رو اگر کاری هست تو از افتش بر نمی آی. هر کار میکنی این نمیشه رزق و روزی تو تو این کار نیست آه؟ اگر دیدی کاری رو توان بر نداری و نمی این کار رو انجام بدی چکار کن و دعاهو رو یعنی اتروک رو کن حالا فدعهو یعنی ولش کن یعنی ولش کن و دست بذار و دست تو بشین نه ولش کنین این کارو ادامه نده ای شکست شکست شکست افسردگی پیدا میکنی محیوس میشی وقتت از بمیره اون بدت بمیری چی دعه و جاوز خوب. و بگذر از این کار الاماتستتی او بگذر از این کار برو به سوی چیزی که میتونی برو دنبال اون که علاقت بهش هست میتونی برو سراغ و جاوز و الاماتستتی نصیحت وشنگی هست اگر کاری رو نمیتونی و میبینی که توان انجام او رو نداری جز نظر روحی جز نظر جسمی و توش موفق نیستی این کار رو کنار بگذار اصرار برو نداشته باش برو سراغ کاری که میتوانی و در اون موفق هستی خب ازالم تست تتشیعن فدعه و جاوز و الاماتست دید ازالم تست مفا ایلون تتشیعن مفا ایلون فدعه دعه آخر واقع شده اش میشه میشه و خوب الان مفایل و مفایل اون فولو مفایلون و جاغز هو ال ما تستتی میگه در اومده مفایل و قبول نگاه کنید او و جاز العلام ما تسل تتیب نکته ای که اینجا وجود داره نقطه‌ای که اینجا وجود داره اینه. الان دارید میبینید دیگه مقاس بگی چهار تا مفاهلتون داریم هر چهار تا شده معصوبه مفایل. اون دارید می‌بینید و تختیام کرد ولی اگر دقت کنید توی وجاوز و جاوزه این وسط بعدش هم متحرکه، اعلی، همزه متحرکه. این جای اشباع کردن ها نیست که بخونیم و جا و هو این مثل فدعهو نیست جاوزهو نیست جاوز خونده خوندش و جاوز العلام ما تطیمیم و اگه جاوزهو و بخوانیم جا هو به جای اون هو میشه هو و میشه یه دونه یو و این به جای مفایلون میشه مفایلو و ما اگه مفایلو داشته باشیم بهش میگفتیم چی چی؟ معصوبه بگید مکفوفه که بالا گفتش که این در تام نگاه کنید گفت, گفت تام ممنه فیغیر و هایلا مفایلو ولیکن حاضر زحاف در این تام کمه در موضوعش زیاده این در واقع یکی از همون زهاف کفیه که اشون مثال براش نزده تو متن مثال هست اما متوجهش نشده زهاف کف و هو هست خلحرف از سا به از سا و قد حق و تفعیله المعصوب فتام من ها در تام خیلی کم دیدم میشه که ما داریم تو اینجا میبینیم فیوهیره حالا مفایی لف پس این و جاوزه درست شد یعنی مفایی لف اشباه دلیل نداره اینجا بکنیم غلطه درست شد میشه مفایی رو خب بله هر چهار چهارتاش معصوب است اما یکی از این چهار تا غیر از معصوبه بگید مکفوفه هم هست که ما گفتیم مکفوفه رو مثال نزده اگه نگاه کنید مثال نیست این هم مثاله مثل اون تو درس قبلی که نطویه رو مثال نزده بود من بهتون نشون دادم اینجا مکفوفه رو مثال نزده که ما داریم معصوبه مکفوفه رو میبینیم و جاوز و تستتی دو دو الوافر المجزو وافر مجزو یعنی فعولان افتاده وافر مجزو یعنی فعولان افتاده یعنی شده مفاعلت مفاعلت مفاعلت مفاعلت و ما معهوزه فت تفیله تفاولان من استرايح. اون يه كه تفیله ي فاولان شده از هر دو مسوايح شده مفعلتون مفعلتون مفعلتون مفعلت. فاصله حالا شكل تالي مفعلتون مفعلتون مفعلتون مفعلتون تون شده زرو و هاذا نوع من بهر الوافر، و این نوع از بهر وافر قلیل والاستعمال به شعر عرب قلیل از در شعر عرب میگیم آقا تو به ما گفتی قلیل استعمال رو ما نمیخونیم قلیل استعمال ما همین کسی رو الاستعمال داره از دستمون در میره نمیتونیم حالا قلیل والاستعمال بشونیم میباسه چی میگه قلیل استعمال رو حفظ کنیم میگه نه این قلیل الاستماار در شعر عربی همونطور که من گفتم به نسبت علت تام نمیونه نسبت به تام بش نه اینکه انقدر قلیله که نادره که قابل حفظ کردن نباشه ارزش حفظ کردنش نه یعنی ما اگه 100 تا بحر وافر که زیاد شعر گفتن یکی از بحرهای دوست داشتنی شاعراست ولی بحر وافر اگه 100 تا توش بیت گفتن حرف 90 هشتادتاش نوتتاش حتی این حجم از اون تامه ده درصد پونزد درصدش بگیر مجزوعه برای ده پونزد درصد نسبت به کسرت بحر وافر که نگاه کنی خیلی زیاده مثلا اگر فرض بفرگای 100 تا تو بحر وافر گفتن 20 تا قصیدش 15 تا قصیدش مجزوعه خوبی خودش خیلی کم چون بهر وافر بهر دوست داشتنی زیاد تو شهر گفتن بله این بحر وافر که زیاده بیشترینش تامه چون خودش ضربه هنگش دونده بعد کمترینش نوع مجزوعش و هازن نومن بهر الوافره قنیل و استعمال شهر عربی در شعر عربی استعمالش کمه اما به نسبت لطام به منهو نسبت به تامش کمه درستو بعد ین حقو بعد یت خلو زهاف و عصب علی جميع تقیلات البیت ال این چهار تا مفاهلاتون داره گاهی اوقات ذهاف و عصب به هر 4 تاش داخل میشه مفاهلات ها میشه مفایل مفایل مفایل مفایل حتی گاهی اوقات ممکنه که زهاف کفم بهش داخل شه مفایلون بشه مفایلون و قدیت خلو زهاف به علا جمیع تفعیلات البيت الواحده. و قدیت خلو علا بعضه ها گاهی هم به بعضش داخل میشه نه با قول شاعر مثل قول این شاعر. خب و با نل حی و بود و شفف و آدکت تربون عرق تو یا عرق ته بیشتر عرق ته هستش لذکر موقعها فهن لذکر حل قلبون میگه و بان الحی بان یبینو یعنی افترق و جدا شد هی یعنی قبیله الحی یعنی اون قبیله منظورش قبیله معشوق است میگه و بان و جدا شدند کوچ کردند اون قبیله فقطره بود پس به غربت رفتند یعنی فابتعدو دور شد این جمله جمله خبری است با هم خوندیم چی گفتیم جمله خبریه برا برای الخبر میاد برای لازم فایده میاد گاهی اوقات هم اغراض دیگری داره که این غرض دیگر توشه داره اظهار حسن و اندوه و تحسر میکنه یعنی اینجوری میگه بابا نن حیو رفتان رفتان. این در واقع داره حسرت میخوره دور شدن آنها و بان الهی و و شفف و آدکت ترب ترب به شوقی میگن که به انسان وارد میشه و انسان از خود بیخود میکنه حالا این شوق ممکن شوق مثبت باشه ممکن شوق منفی باشه یه شوقی که به انسان وارد میشه و او رو از خود بی خود میکنه این تربه گایوها این ترب این از خود بی خود شدن در شادی گایوها در غیره اونه اینجا غیرش شففه یعنی شفاف کرد نازک کرد میگیم دلش نازک شده و شففه و کرد و نازک کرد دل را ات تربو. این شوق کوچوم شو اینج اینا دارن میرن این شک که اینها معشوقه داره کوچ میکنه به همراه خانوادهش این شک دل تو رو نازک کرده ای عشق میریزی هی محزونی حالا این شاعر داره به کی خطاب میکنه و شفاف و آدکه به خودش شاعر اگه به خودش خطاب بکنه بهش میگن صنعت تجرید صنعت تشخیص مثل سعدی آمرده نکونام نمیرد هرگز مردان است که نامش به نکوی نمیرد به خودش میدید پس گفت اون معشوقه ما با قبیلش دوری گزیدند و به کوچ رفتند و این شک و شوقی که اونها رفتند دل تو ای شاعر خفیف و نازک کرد دل تو را خیلی نازک کرده که با کوچکترین چیز تحت تأثیر واردش بشی با شف و فؤاد و حالا اگه عرق تو بگه یعنی برگشته به مخاطب از مخاطب که خودش خطاب کرده اون بیت بالا برگشته به متکلمه وقته که خودشو دیگه داره از خودش میگه عرختو فرست شد که صنعته التفاق میشه از مخاطب اومده به متکلم داره و از خودش دیگه میگه خطاب نکرده به خودش داره خبر اما اگه عرخته باشه معادل با اون فعادکست یعنی هنوز داره اون صنعته تجرید رو که خودشو گذاشته داره خطاب میکنه داره ادامه بید. عرق تا لذکر موقع خواب عرق یعنی شب نخوابید، یعنی سهره با هی دو چشم. یعنی سهده با هی دو چشم. یعنی شب نتونست بخوابه بیخوابی گرفت عرقت تو یعنی بیخواب شده نتونستم بخوابه. میگه عرقت. یعنی خواب به چشمت نرفت چرا لی مال این علته لذکر موقعها به خاطر یاد کردن جایی که اونا رفتن ها میخوره به حی یه با بار به با اعتباری که انسانند ل و حول گفت فقتره بو یه به با اعتباری که قبیله است و مجموع است میگه موقعها میتونستن بگه موقع اهم به اعتبار اینکه انسان های زبره بود یعنی خواب به نرفت ل ذکر مصدر اضافه شد به مفعولش یعنی به خاطر یاد کردن تو موقع این قبیله بود. موقع یعنی محل بود. که الان اینا کجا کجا رسیدن میگه این خواب از شد پریده که حالا اینا رفتن الان کجا مشافت شدن چون چون تو هم با خودشون بردند الان تا بیتاب هستی شب خوابت نبرده به خاطر که یاد میکنی که اینها الان کجا واقع شده به ذکر موقع چون یاد اونها میفتی و شب خواب از چشت رفته فحن للذکرها القلب فحن حن یعنی ناله کرد ننین یعنی ناله کردن فحن للذکرها پس ناله کرده به خاطر ذکر این قبیله کی القلب یعنی این, دلتو این دل تو این دن به خاطر بگو اینکه به یاد اونها افتاده قموژین و ناراحت الگل با الفلام داره خودش عرق تو عرق ت هر دو خونده شده حالا ایشون عرق تو آورده یعنی شب نتوانستم به به خاطر که یاد افتاده بودم که اینا الان کجان نگران شده بودن. این الان کجا رسیدن چطورن دور شدن به خاطر همین که اینها رو یاد کردم ها قلب من محضون شده بود در ناله شده بود قلبم به تپ و تاپ افتاده بود به خاطر یاد اینها فهندل زکرها القلب خوب مشخصه و با مفا مفایلون یفق تربو مفاعلتون یکیش مفاعلتون و شفف و شفففو آ مفاعلتون دکت تربو مفاعلتون سه تاش مفاعلتون یکیش مفاعلتون عرق تو لزک مفاعلتون ا اره تو لذت وارد نه ماآبیه هم مفعله تون فن هن ستش سالم اما آخرین و حال قلبم الان نگاه کنید این دوتا بیت رو تو بیت اول اولی مفایلون اومده ستای بعدی مفاهلاتون مفاهلاتون میواد تو بیت دوم ستای اول مفاهلاتون اومده آخری مفایلون چون زهاف میتونه هر کجا داخل شد. ولی سالم نیست خلاصه ینه زهاف عصب توش هست خلاصه بحر وافر بحر ساده بود من هم روان گفتم باش بازی کردیم که بتونید شما خوب مسلط بشید خلاصه بحر بافرینه لحاز به نوعان مشهورانه احد هما من برای این بحر نوع مشهور هست یکیش تامه ولی آخر و میسور دیگری میسور و ید خلوفی حاز به من از زحافات زحاف و داخل میشه در این بحر از زهافات نوع زهاف عصب و یقایی رو پس تغییر میده مفاعلاتن رو الا مفاییل و ذهاف کف و یغیر و مفاعلاتن معصوبه مفاعلاتن معصوبه رو یعنی مفاییلن رو تغییر میده الا مفاییلو که اینو نشون نداد به ما من تو اون و جاوز به نشون داد و ذهاف اخیر قلمایت خلود این ذهاف اخیر که بشه مفاییلو خیلی کم توی تام داخل میشه ما بالا تو بهت دیدیم و یک خلا المجزوعه به کسرتن، اما در مجزوع به کسرت دیده میشه خیلی زیاد که البته تو مجزوعش هم ما ندیدیم یعنی مثال مجزوعی که داشته باشه خب زیاده نزده. کمش کمتر دیده میشه ما تو بالا تو اون و ها برای شما این رو دیدیم و شما راحت دیدید که مفایلون شده مفایلون مفایلو معصوبه است و وقتی شد مفایلو میشه معصوبه مکبوفه آه؟ و این در تام کمه اما در مجزوع زیاده برست شد ما در تام که کم بود در بیت به شما نشون دادیم ولی اگر میخواستی اشباهیشون رو بگیری که اصلا وسط بیت اشبا هم جایز نیست اون موقع دیگه اصلا برای مکبوفه مثال نزده بود کتاب هم تصدیف شد از این جهت شما فهمیدید بحر بافر رو هم به طور کامل متوجه شدید انشاءالله که این ستا بحر رو با هم کار میکنید تا هفته آینده هفته آینده انشاءالله بحر چهارم رو برای شما خواهم خوند بحر کامل دیگه راه افتادید یعنی سخت نیست میتونید مطالب رو قشنگ خلاصه کنید تو نصف صفحه یه صفحه و دو سه بار نگاه کنید و حفظش کنید و انشاءالله این درس از درسهایی هستش که به شما کمک میکنه در فهمشه، در موسیقی، در لذت بردن از اون که میشنوید به عنوان نظمونه هست میتونه کمکتون خب که موفق و معییت باشید در صحت و کامل و سلامت و کامل باشید بازم خدمتون فردا رو تبریک میدیم انشاءالله که در پناه همد موفق و معید و سالم باشد و سلام علیکم و رحمت الله و برکا.